حتی دیدار آخر شاید رسید از راه بردای یه روزه به در بلک هوا چون بلدی بخندی و چشم دل ببازیم با اش دل ببندیم اشوا که دلم سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فردا نجوا که درب سبز پیچیده توی دنیا از اوج موج شادی تا فردا و پس فرداب. سال پیش در چنین روزی برابر با دوازدهم بهمن ماه سال 1357 هجری شمسی هواپیمای امام خمینی در فرودگاه مهراباد به زمین نشست. است ایشان قبل از ورود به ایران و نیز بعد از ورود وعده های مبنی بر دخالت نکردن در سیاست، وニーズ مجونی نمودن آب و برق و خیلی چیزهای دیگر داده بودند. حالا برای اینکه ما به این شما راهی معنا پیدا ساخت، زندگی معنوی شما به من بخواهم منفقه بگذرد. خوش نباشید که ما فقط موساهیم، آب و برق را متصدی می‌کنیم، چون شام را معنی می‌کنیم. خوشب این مقدار نباشید که این وعده ها در ابتدا از سوی مردم همیشه در صحنه جدی گرفته شد. اما بعدها مشخص گردید که شوخ طبعی نیز از ویژگی های بارز امام بود. ایران ایران ایران در نيران نيران نيران دل باورم بار سلام علیکم خوبین؟ چه خب به به به میبینم که در و دیوار خونه رو آزیم بستین و بوی گل و سوسن و یاسمن و اینا داره میاد و همه خوشحال و شاد از اینکه که امام اومده نشستین پای برنامه آفرین به شما چشتون روشن چشممون روشن چشمشون روشن راستی تلویزیون هنوزم چاقلاغر پخش میکنه از این کاغ از دالبوری توی مدرسه ها میچسبونی؟ کاغ از دیواری و اینا برحال آقا 37 سال پیش در چنین این روزی بود که امام تاتی تاتی کنان از اون پله های عباپیمای ایرباس، در حالی که هیچ احساسی نداشتن البته و در حالی که مهماندار هواپیما با اون اینک ریبن زیر رو گرفته بود اومدن پایین پشت سرشم جمعی از یاران انقلاب که بعدها تبدیل به مغزوبان انقلاب شدن و دونه, دونه هم البته کم کم از عکس حض و یا سانسور شدن پیاده شدن جا داره همین ابتدای برنامه رادیو پس امروز یه سلام خیلی مخصوص ارز کنیم خدمت همه بزرگترها و پدر مادرهایی که بالاخره اون دوره زحمت کشیدن خیلی واقعا تلاش کردن هر روز انقدر مرگ برشا گفتن مرگ برشا گفتن تا امام در یک چنین روز فرخوندهی قدم رو فرق سر ما گذاشتن تشیف آوردن یعنی واقعا ما نمیدونیم با چه زبونی تشکر کنیم به خدا زحمت کشیدین اصلا به زحمتتون ر اون صبح چه قراعی برین یه گل سوسن یا سمن سامانوباد یا یه بوی دیگه ای از وطن آمد آخ که چه خوب شد که دیو از غلن رفت جا شلوف خوشی سوی من آمد شد فجر ما در حال زجریم بس هوای در بدن آمد کل جهان دشمن و ماته خوبی جنگ و نبرد و ستیستم برای مناسبت به هر حال ما در این لحظه با دو لاله در خون خفته چیز ببخشید با دو شهید دست از جان نه اونم نبوده چی بود با دو با, با قاتی کنم دو دست گل به دنیا اومده در دوران پس از برجا نه اینم آقا ببخشید پس از انقلاب در خدمت شما هستیم یعنی سعید و الی. بچه ها سلام چه خبر خوبین سلام مرسی شما متولد بعد از انقلابین این دیگه آره هر زفتونه متولد بله بله. بعده چه سالی؟ سعید چه سالی؟ من سال 63 الی؟ واقعا از من پرسیم ببخشید من مزاره اصلا اشتباه شد, اشتباه, شد. اشتباه شد آقا بگذاریم بگذاریم خب شما ها بوی گل سوسن و یاسمن و اینا رو قاعدتا متوجهش نشدید دیگه به هر صورت بچه ها امروز سعید و الی یه گذاری داشتن تو عالم تویتر و بوی گل سوسن و یاسمن رو بین تویت هایی که کاربران ایرانی توی تویتر تولید کردن جستجو کردن زیپتون رو نکشیم بالا میاد میادیم زید. خب بچه ها چی آوردین؟ کی, کی چی گفته؟ کی بوی گل میداده؟ کی بوی گل سوسن میداده؟ چه خبر بوده؟ آره فرشی تو این دو سه روز بحث دهه فجر و دوزده بهمن اومدن امام حسابی داغه خلاصه خیلی تویت هایی بامزهی داشتیم خالباز گفته که دوازده بهمن 57 هفت تنها روزی بود که برای شادی روح نیازی به فاتحه نبود همون سخنانی امام تو بهشت زهره به قدر کافی تنز بود که مرده رو بخندونه دیگه خانم فرزانه نوشتن که خانم امام ازشون پرسی روح الله جان صبونه تو هواپیما چی خوردین امام گفتن کق مقبا با شیق و پنیق. اونم جواب داد دلم برای همین بانمک بازی هاتون شده بود خیلی هم خلاقیت بشن خواب فرزانه خب ترادیاتور گفته بیاین دعا کنیم امسال دوازده بهمن امام نیاد شاید همه چی ردیف شده شاید آر راست میگه شاید همه چی بعد فرانی نوشته که فکر کنم امسال دوازده بهمن خود امام خومنی رو هم سانسور کنن وار بعید نیست والله. جنگ که همه رو سانسور کردن فقط خودش مونده بعد بعد. <تصفيق> بابک گفته حضرت به هم افتادن دارن تمام جاهایی که امام 12 بهمن رفته رو زیارت میکنن. خلاص یهودیی تو مصراح محراب دست گل بود تعجب نکرد. بله دکتر فلانی نوشتن که این 5 کنکور عرشت دارم دقیقاً حسی دارم که امام موقع ورود به ایران تو هواپیما داشتن هیچ حسی نداره هیچ حسی نداره گوزن پلاستیکی گفته چرا اصرار دارن کار دستی واسه امام درست کنن نکنید خب بنر مگه اشکال داره راست میگه خب والا این همه ما مقواییه بله و توییت آخرمون چنین گفت صادق نوشته که تنها دو نفر بودن که وقتی از خارج اومدن ایران با استقبال میلیونی مردم مواجه شدن یکی امام روز دوازده بحمر پنج و بود یکی هم اندی تو اون کلیپ کارتونیش به به به پس از بوی گل سوسن و یا و امام و توییتر رسیدیم به آقا اندی خیلی حرکت بود خدایش ها دستتون درد نکنه بچه ها سعید و الی ببینیم حالا این آهنگ آقای اندی که این دوستوان گفته بود چی میگفتن آقای اندی که این همه ازشون استقبال شده بود همون است. von eck auf gad und rubel nagelnut gelo ich auf ab laber ich tutandut man und ich wurde ganz nicht wohl verschennet halli schön شود بی من بی تو بی جنوبی غلبه من چی بگم چنگاتو کوی غلبه من تو غلبه ندی آره آره والا یک دو نه آره آره والا بیا تو یه از امروز رسما توی تقویم و توی مناسبت های ایران وارد دهی فت شدیم و ویژه برنامه های تلویزیونی هم لابد شروع کردم به پخش سرود های انقلابی و ویژه برنامه های مخصوص و مصاحبه با مردمی که دوران سیاه شاهی رو به چشم دیده بودن و زندگی تلخ و سیاه اون دوران میگن یه نمونه شو با هم گوش کنیم دینداری آزادی نبود بیان آزادی نبود گفتن حقایق آزادی نبود ارتباطات آزادی نبود به ملت یاد داده بودن که همه چی شاه بله دقیقا فرمودین؟ دقت نکردین؟ ای چطور نشید؟ خب ارزه بدیم من اینو دونه دونه حال با هم بریم جلو دونه دونه براتون توضیح بدم اه. کم کم هم جور کنیم قشنگ ملکه ذهنتون و ذهنمون بشه اولیش فرمودن در زمان شاه در دینداری آزادی نبود. یعنی شاه دستگاه تفتيش عقاید داشت اجازه‌ای نمی‌داد که کس کسی دین خودشو داشته باشه خب خوشبختانه به حال امام که اومد انقلاب که شد دیگه در دینداری آزادی به وجود اومد و دیگه حکومت کاری به دین و مذهب مردم نداشت بعد دیگه اون دوران چی نبود دیگه بیان آزادی نبود آ بیان خب اینم چه الحمدلله جمهوری اسلامی الان در آزادی بیان خب سرمشق جهان شکی درش نیست و امام که اومد دیگه این مشکل نبود آزادی بیانم توی مملکت این دو تا بازم هست گفتن حقایق آزادی نبود. آها، بس بیان حقایق رو هم رهبر معظم خب با تاسیس صدا و سیما به طور خیلی جدی در دستور کار قرار دادن که خب نمونه‌اش هم همین مصاحبه است که این دوستمون داره آزادانه حقایق رو در مورد زمان شاه میگه. یه دونه دیگه هم بود که این جوری بود. ارتباطات آزادی نبود. بله، شاه اون زمان حتی اجازه نمیداد مردم با هم ارتباط داشته باشن. آقا مخصوصا روی ارتباطات بین زن و مرد بدونی چقدر حساس بود خیلی حساس بود بعد که عمام اومد کلا ارتباطات و روابط رو آزاد اعلام کرده و گفت مسائل شخصی مردم به خودشون مربوطه دستشونم درد نکنه آخرین نکته رو هم ایشون اینچنين برجمردن که به ملت یاد داده بودن همه چی شاه بله در صورتی که همه چی شاه آقا خانم حرف غلطیه یعنی چی همه چی شاه یعنی چی این دیکتاتوری خب اسمش درستش اینه که همه چی ولایت فقی و اصلا مرگ بر ضد ولایت فقیه این صحبت ها دستشون درد نکنه برحال مملکت داشت به غهغرا میرفت که امام اومد و همه چی درست شد و هوا دلپذیر شد و این حرف قاشیدم امروز خواب بودم بعد دوست دخترم زنگ زد تو همون خواب گوشیو جواب دادم دید گفت امروز امام داره میاد من چی بپوشم بابا امام چیه؟ چه خبر امروز چه کجا بوده من کیم تو کی اصلا واقعا چی بپوشم امروز امام داره میاد واقعا چی بپوشه همین یه چیزی باشه حجابش کامل باشه چادری مثلا چیزی سرش کنه کافیه دیگه به نظرم من دیپورسیدن نداره این جلوی امام که نمیشه لباس مثلا دکولت و مینی جوب پوشید که امام ناراحت میشن حتی اگه مقوایی بود فرق نمیکنه. آقا برو بریم سراغ زورگویی و معابی در کانون خانواده وقتی کمربند ها و ملاقه ها و دنپایی ها سخن میگویند <تصفيق> بیامی شماره 974 بدانید و آگاه باشید کسی که در درون خانه و در ارتباط با دیگر اعضای خانواده خواسته های خود را همواره با کمربند و ملاقه و داد و فریاد به کرسی می نشاند در درونش یک ولی فقیه یک پینوشه و یا یک کیم جونگ اونه کوچک و بدذات زندگی میکند. کند پس چنانچه جلوی این دیکتاتور زورگوی کچک درون خود را نگیرید همانا زندگی را به کام عزیزانتان زهر کنندگانید امزا جمعی از دیکتاتور درونشان را به زندان انداخته ها و فقط با گاندی و ماندلای درونشان نشست و برخواست کرده ها و همیشه هم که خدا محبوب دل همه بوده های رادیو هست و دا دا دا, دا. الان فرش جان ببین لاستاق بارزه زورگویی واسه ما زنا چیه؟ چه حال برادرای گشت ارشاد در مورد آه مسئله آه حجاب. آه آه آه آه آه. اونقدر با ما مهربون منطقه برخورد کردن که حتی وقتی از ایران خارجم میشیم تا دو سه روز تا پلیس یا حتی سکیوریتی میبینیم تو توهم بحث حجاب مییم وای روسری مغبه. خلاصه ببینیم چه راحت خارج از مرزهای اختیارشون هم که باشیم هرچی چی میپوشیم و هر جا میریم و به کاممون تلخ میکنن. راست میگیم ولاد راست می. اینو من خیلی از شنیدم چه شنی دارن. یعنی قشنگ یه واحد گشت ارشاد یعنی باید گشترشتاد در درونمون هم مستقل کردن خودمون خبر نداریم بله مورد داشتیم طرف تو هموم داشتی دوش میگرفته گشترشتاد درونش حتی بهش تذکر داده در این حد یعنی ماشین مشتی ممدلی ارزون و بیمو اتلی ماشین مشتی ممدلی نه بغداره نه سندلی بره. یعنی یعنی روحانی رو چی برده بودن از این زواه که این زنمنای های بعد هستن آره نه آه چی مدش... مدسمه بوده از اینا که تو این کاخماخ ها میذارن این خارجه کیا <تصفح> خداییشم چی ما که نفهمیدیم چرا این خارجی ها این زوری بکنه این همه زحمت میکشیم مدسمه میسازی این هوا خب یه پارسه شلوار شلواری پیرانی یه چیزی هم بندازه رو دیگه <تصفيق> والا خب یعنی چی کار کردن اینا حالا روحانی رفته لباس کردن تنم و, و؟ نه چی پر؟ کارتون زونه با. یعنی از این کارتون های سال و اینا اوه اوه چه بار. مثل این جسی حالا خود بودیم دیگه شما چهسییاهله حالی دیگه؟ مثلا یه روییارووی از این خارج میاد اینجا، از عکس امام خوشش نییه بعد اینا بگیرن تی عکس امامو بپوشونن هم <تصح> مله خیلی حال دادن ولی ها این خارجکی ها ک بوده حالو داشت زونه ایتالیا حالا ما چه نرفتی ایتالیا ولی اون قدیم ندیم زبون زمون که بودیم این تیم های فوتبالشون خیلی حالی کردیم ماشون دیگه اون یارو تیمه بود که پیرنش مثل لونگ بود چی بود میلان آره ای میلان زونم؟ نباشه پرسپولیس که سرور ها لونگش بود اون مادراش زداز هستن شما آبی که نیستی که زونه دایی اگه آبی بودی هم اینجا پیادت میکردم آم <تصفح> شوخی میکنم. مسافر مادراش رو تشه ماست بله والا سکته میدونم امت من چی میصرفیده برای این خارجی ها دیگه پوشوندن مود از دیگه والا واسه ما هم به صرفه میکنیم این کارو من خودم زونه شما چی؟ یه بار برام صرفید رفتم و رقصیدم رخصیدم داشت هرام و سافرامونو میخندنیم کرایمونم میره بالا فکر نکنیم افت و مسلم نیست والا به شما نگرده ای تاکسی خالی تو رو به خدا ده بیا بیا شدم بیپا دارم میوفتم وسط خیابون ای خانم طلا بفرمای بالا اشف نیا که دیگه میخوام دوباره بشم شوفر بیابون خدا رحمت خونه ننه و باباتو خدا رحمت کنه با خدا رحمت مادر شما رحم کنه خدا نگهر در قوام خشاتو خدا شمارم رحم عزت بده سوت حالا حالف بودم خمارت میدونم میدونم خدا رو شک شدم سوار تاکسی خدا رو شد, شد. شد. اما اه... یه هاجاغایی هستن که سمتشون معاونه فرهنگی دانشگاه آزاد تبریزه ایشون اخیراً یه مصاحبه کردن با مجله حریم امام و یه حرفایی زدن که آدم فقط دوست داره با شنیدن این حرفا بودوه بره تو افق گمشه مثلا ایشون فرمودن وقتی که جنگ جهانی داشته تموم می شده و اون دیدار معروف بین رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر انگلیس و استالین رهبر شوروی توی تهران صورت میگیره. شاه که خیلی از این آدما میترسیده به علمای قوم اعلام میکنه من که جرأت ندارم با اینا روبرو رو بشم شما بیان یه نماینده معرفی کنین اون بیاد با اینا در بیفته بعد علما هم دست تو قوتی امام امت رو میارن بیرون به شام میگن این اصل جنسه برو کارید نباشه ایشون در ادامه از زبان امام امت اینجوری نقل کردن از این دیدار که من در کنار شاه به استقبال میرفتیم با اینکه خوشم هم نمیامد روزولت آمد در هواپیما را باز کرد بدون پلکان پایش را روی زمین گذاشت چرچیل هم همینطور اما استالین با یک هواپیمای بسیار بزرگ آمد ساعت منتظرش بودیم دیدیم اول کالسکه زرینی با چند از عد... پیاده شد با سیگاری در گوشه لبش پیاده شد شاه معرفی کرد من هم نماینده علما بودم شاه به من گوشه چشمی آمد که این خیلی آدم است. بعد به استالین دست دادم یک خورده بی به من نگاه کرد در سالن به من گفت شما چه نظری نسبت به ما دارید من گفتم شما در کاخ کرملین زندگی می کنید؟ گفت بله گفتم شما حرف از نظام کارگری میزنید آیا هر نفر مردم روس و اتحاد جماهیر شوروی می توانند کالسکی زرین سوار شوند گفت نه گفتم آیا این است شعار ادالت خواهی و نظام کارگری شما بله این صحبت‌های امام امت بود از به گفته ایشون بر اساس گزارش‌های دریافتی رادیو پسوردا اصلا استالین بعد از این استدلال امام امت کلا ترکید رفت هوا یه جوری که خوردریزاش هنوز هم پیدا نشده البته ایشون به روزویلت و چرچیل هم در ادامه انایت خاصی داشتن که الان سعید میخونه چه جوری بوده؟ من به رئیس جمهور آمریکا و چرچیل خیلی بدبین بودم شاه نمیتوانست به آنها چیزی بگوید ولی, من ها... ولی ما حالی کردیم که شما در ایران نمی توانید بمانید شاه آنها گفته که بالاخره علما اینطوری هستند و این هم از همه آنها تیزتر هست دیدی تو رو خدا یعنی اما امت از همون دوران اون شبابشون یه چیزایی تو خودشون داشتن که باعث می شده یه طرف ایشون باشه اون طرف چرچیل و استالین و روزولت و شاه و اینا. واقعاً اما مهمت خوبی داشتیم ما فقط نمیدونیم چرا وقتی ایشون خودشون به سلطنت رسیدن و پادشاه و ملقورای دنیای اسلام شدن یهو یه جوری شد که کلاً منطقه قابره میانه رفت رو هوا خیلی از ایرانی ها هم در اثر رهبری ایشون و نایب برحقشون از یه هفته بعد از 22 بهمن 57 که هنوز شما پد نکرد بود میگفتن نور به قبرت به بار و چه غلطی کردیم این خمینی‌ها خیلی بی‌عصابه بابا برگرد بیا دل ام تانکی به هر جا که برم من آسمون همین رنگ ای آسمون کبود مگه من چه بد کردم که دلم ستامی بلو نشود رهای یک دم ای آسمون کبود مگه من چه کردم که دلم ستامی بلو نشود رهای یک دانی دلم چه خواهد قلبش من از او به یک اشاره از من به سر دویده ای آن که در راه تو از جانو سر از پوچه تو شب با چشم تر ای آسمون که مگه من چه بد کردم که درم زدا می بلا نشود ای آسه مونه که بود مگه من چه بد کردم که دیمه از دا می بلو نشم حد راهای راستش من هرچی چی بازی دیدم تو خانواده های ده ها یه توجیه پشتش بوده مثلا میخوان بچه رو مسئولیت پذیر تربیت کنن هنوز قدش اندازه سطل شهر داری نیست میگن بعد پلاستیک زباله رو بر بنداز تو اون سطل یا مرده زنش به خاطر قضیه که تاش سوخته فوش و فضیحت میده اگه دست بزن نداشته باشه بعدم میگه بعد تربیت بشه یا زنه در خونه رو, رو مرده باز نمیکنه تا شب ماشین بخوابه تربیت شه لیست خریدارش نره اینقدر از این ماجره ها هر روز تو شرکت میشنوم، دیروز خانم منشیمون با پای چشم ورم کرده که اومد شرکت همه تعجب کردن. آخه خب معمولاً هر چی شینده بودیم این بود که تو خونه‌شون این خانم منشیه که قلدره و زور میگه به شوهره یعنی با اینکه خودش کارمنده، یه هزاری از حقوقش هم خرج خونه نمی‌کنه و شوهره با حقوق رانده تاکسی تا خرج لباس و آرایش خانومم بده. خلاص وقتی همه دورش کردن که چی شده، گفت هیچ چی مرتی که می‌خواد پسندازم اون بدم بهش تصادفی تاکسیشو ندادم مش کوبید توی صورتم و همینطور که داشت با آب و تاب تریف میکرد چطور مش خورده یهو در شرکت باز شد تا مامور پلیس با شوهره که کلش بان پیچی شده بود یه پاشم لنگ میزد مدن خان رو دستگیر کردن به جرم شکستن سر شوهره با گلدون و سوزوندن پاش با آب جوشی کتری اه با سلام بیکوسی را، ضمنه تجب از تصمیم شورای نگهبان برای مصاحبه با داوطلبام رد سلامیت شده که نآویندگی مجلس با اموری بر صخط مهمترین عناین خبری ساختده گذشته آغاز مینمماین. بازداشت ش کارمند دولت به تمامام زمینخوااری، و گمانه زنی ها در که احتمالا الان کارمندار نشوندن بهشون میگن تق کن تق کن تا زمین که خوردن بالا بیارن بچه خواندن مخالفان نظارت استسوابی توسط امام جمعه اصفهان و پاسخ مخالفان به وی که های شما بزرگ و ریش سفید و آقل مردی ما همون ترجیح میدیم بچه بمونین و نظر علی لاریجانی رئیس مجلس که اصلاح قرارداد نفتی در خیابان صورت نمیگیرد. و نظر کارشناسان که دادش قرارداد داده نفتی تو قرارگاه سپاه و پایگاه بسیج و اینا هم اسلام چه برسه به خیابون؟ سرخط مهمترین خبرها که امروز و امشب میبابشند اینک مشروع خبرها با همکارم بوی بلی با با سلام رهبر انقلاب دیروز در مرقد متعهد امام خمینی حاضر شد و توسط حسن خمینی یادگار یادگار امام از ایشان استقبال به عمل آمد. بزارش ها هنوز مشخص نیست که در این دیدار بین این دو درباره رد صلاحیت حسن خمینی در انتخابات مجلس خبرگان صحبتی رد و بدل شده است یا نه. اما با توجه به گمان زنی ها بعید نیست که رهبری نظام با عباراتی چون خطرناک حسن و مواظب باش حسن خطر نزدیک شدن بیش از حد حسن خمینی به هاشمی رفسنجانی را به وی گویزد کرده باشد پایان مشروع اخبار ای آقای میکروفون طلا این یعنی واقعا احتمال داره همچین حرفای زده باشنیشون من چی میدونم بلبل من, من تو جیب عبای حسن خمینی بودم که بدونم خب پس چرا شما اینجوری مینویسید این کار مسداق تشویش ازهان عمومی آقای میکروفون طلا بله با دلت خوش تو هم انبلبلا ما آخرش نفهمیدیم این از ازهانمون میچره انقدر داغونن هر کاری بکنی تشویش میشه بی خیال بابا بل بل بل برو به دکترت برِس برو. وا چرا من هرچی میگم شما هی پای دکتر رو میکشین وسط های میکروفون هل پایی کیو بکشم وسط بل بول تو نکنه که فر کسی دیگه ای یا وسطره همیشه پاوی یک مرد دیگر در میام نست دییم داریمیم <تصفح> نه بابا اره؟ چی میگین شما منظور اینه که این بحثایی که ما میکنیم اینجا خیلی حرفه و تخصصی رفتی هم به دکتر نداره شما هی میکشینش وسط آه، تا حالا اینجدی بهش نیگاه نکرده بودم. خب میخوایید نرو به دکتورت نرس اصلا بولی بولی. واقعا یک بار نشد من یه انتقاد از شما بکنم نه. شما آدم پشیمون نکنید من رفتم <تصفيق> شب خوش بری با بری شب میگم بله ولی به دکتورت نرس یا میشه نری ولی به دکتورت برسید دیگه نمیدونم هر کنی دلت میخواد بکنید همانطور که مستحضر هستید دهی مبابرک فج آغاز شده است و امروز روز سالگرد ورود رهبر فقید انقلاب از پاریس به میهن در دوازده بهمن 1357 است. و همین مناسبت همکار گرامیم خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر، به یکی از کارگاه های تولید کننده وساویل پاستاشت بازگشت تاریخی امام امت رفته تا برای شما گزارشی تقیی کند همکار گرامی اگه صدای من رو دارید بفرمایید که کجایید دقیقاً کجایید الان بله همکار گرامی من همینک در کارگاه امام سازی هستم و الان دقیقاً سر خط تولید امام قرار گرفتم همکار گرامی همکار گرامی کارگاه امام سازی چیه دیگه همکار گرامی به خاطر دهه مبارک فج ادارات و نهادهای های مختلف مقدار زیادی امام سفارش دادن که همین مسئله باعث شده کارگاه های مختلف بی برای خب. ساخت ایشون راه بیفتن در شط کشور همکار گرامی جنس جنسشون چیه بعد این امام ها همکار گرامی؟ با خب با البته بستگی به بودجه اون نهاد داره ولی بیشتر سفارش ها سفارش امام مقوایی همکار گرامی خب. امسال اینم بگم با توجه به اینکه ها برداشته شده مم. چند تا امام آهنی هم سفارش دادن هم سرگیران امام آهنی؟ بله با. اوه ی اون و کله ملت حالا. خب همکار گرامی اونجا دیگه چه چیزهای هایی می سازند غیر گرامی آه. تو این کارگاهی آه. که من هستم سپارش هواپیمما ما هم قبول میکنن همکار گرامی یا اون عکسی که چند روز پیش منتشر شده بله بود. بود که یه هواپیما خنده دارید عنوان هواپیما امام ساخته بودن کار همین این کارگاه بوده هم کار گرامی. پرسیدم از یکی از مسئولین این جمع کار گرمی از ایشون گفتن نه اون که شبیه هواپیمای جیم با بود رو اینها نساخته خوب خوب ها نساخته بودن هم کار گرم خیلی خیلی پس شت با الو. باشه. علام میام. علام میام. چیزی جمع. شده همکار آه. گرامی علو. همکار گرامی چی شده داره. همکار گرامی یکی از کارگرهای اینجا دیروز دیره امام آهنی بوده مجروح شده آخی. اینه که مسئول کارگاه از من خواهش کرده بیام سر امامو بگیرم میخوان جا بداش کنن همکار اخ اخ اخ اخ چه کار سختی چیزی اومده. سر امامو گرفتی الان آخی. یعنی آخی. ای این آهنیه آخی. یا مقبایی الو آقا بپا علیه. بپا ای بابا. نمونی زیر امام مالا... کار دست خودت بدی هم کار گرامی آقا امامو گرفتم شما اون برش بگی علو بگی آقا ب... علو توجه شما تا شبی دیگر و برنامه دیگر و آه. امامی دیگر خدا نگهتان به خدا الان پسری کار دست خودش میده میشه شهید راه امام خود امام هم چه نیز امام غلاویه دیگه چه فایده باورم نمیشه مسی برنامه زور گویه همین امروز از معدود دفعاتی بود که واقعا به من زور گفتن اونم این بود که امروز رو رفتیم دکتر و همسرم به زور من رو مجبور کرد که آمپول که دکتر تجویز کرده بود رو بزنم از صبحم باش قهرم میدونم که این برنامه رو گوش میکنه اشکال نداره دیگه حالا دیگه و هر حال جایی که از قدیم و لایام اعمال زور و ت به خشونت اشکالی نداشته تو تیقتی بوده دیگه. یعنی چی آمپول نمیزنم نمیشه که آقا اگه برنامه میشنوی از طرف ما دست درد نکنه حال خیلی ممنونم مجبورشون کردی که رو بزنن آمپول در ترس نداره که <تصفيق> دیدین بعضی وقتا وقتی میرین توی چون حالا بحثمون بحث زورگویی و توی خانواده و خصوصاً پدر سالاری و مادر سالاری دیدین میرین میرین توی خونه‌هایی که پدر سالاری اوضاع چه شکلیه یعنی <تصفح> همه چیز دقیقاً باید مطابق میل آقای خونه باشه مخصوصاً وقتی آقای خونه مثلا پای تلویزیون نشسته لم داده که دیگه هیچ چیز دیگه واویلاست. تصور کنی؟ فکر کنی؟ فکر <متحن> پدر جان گرامی با سلام می شود لطفا کنترل تلویزیون رو بدهید ببند کنترل تلویزیون مخاجگاه بچه الان فینال مسابقه برترین خواننده بهتر با پشت پرده های جذاب و دیدنی شروع میشه بعد با... شروع میشه ده. که شروع میشه به تو چاخه تو درس عمرش نداری مگه دهخه پدر گرامی من این مسابقه رو از وقتی شرکت کنم. گول کردم به اون محتمل میгун صدای خروسقندی داشتن دور می‌کردم و الان که مرحله آخری ن... اگه نبینم کل این مدت که دیدم هم هدر رفته و حیف و میل میشه ها برو بچه‌ها اینجا وای نسا بابا داره تلویزیون نگاه میکنه خودش برو ببین خیلی ببخشید آه. پدر گرامی و بزرگوار بندهش شما که دارید ناخن می‌ذیرید تلویزیون هم که دارید صحنه‌ای از آه. زندگی فیت لنتون رو پرش میکنه خب لطفاً چی میگی بدن... تو بچه دیوونم ب... کردی ب... چرا که تو پررو شدی آخه ب... زمان ما بابامون یخ میکرد ما تا یه هفته از اتاقمون جرأت نمیکردیم بیایم بیرون آره ببین اینجوری هست اشکال نداره من خواستم مثل یک پدر و نوبه بشینیم و مسائل رو با هم حل و فصل کنیم اما خب طرز فکر سنتی و واپسگرا ب... یعنی ب... شما مانه از این کار شد دیگه نا. مثل اینکه جدی جدی کمر میخواد تو ب... الان م... میکنم چند لحظه ماما... اه... مامان، ای این مسابقه یه بهتنی خاننده یه میشه بابا نمیذاره بزنم اون چی میگی بچه به ای این کنترول تلویزی عمالتو بده چرا مادرتو ما ای تو این مسائل میکنی آخر بله خیلی مچکرم پدرگی رو میبرای اطلاعتون ارز میکنم تکرار این فیتو پلانگتون ها رو که داشتی میدیدی فردا صبح بازم نشون میده. یعنی دو دقیقه ما تو این خونه دست تو آس بله البته انگار این خونه مادر سالاری بلیش حاکم بوده بیشتر در حال این هم یه جورشی بود دیگه سلام همه سلام. هم. بله آفم همه خوردم با این بایکتری ها تیگه رو میگن دیگه اون ازم لگه گفت همین گفتن های دیگه تو ها چی میگی دیگه میگه بله خدا بعد نداله اشتالا خوب میشین دیگه باکتریه حالا دیگه زور بگی یه روز دو روزی یه هفته میخوای مقاومت میکنی آخرش باکتری بیخیال میشه تموم میشه ما از رو نمیدونیم کجا دلمون بذاریم اونو بیخیال. اونو من دوسته اما توی محیط‌های کاری قلدربازی و زورگویی مدل‌های مختلفی داره یکی از سنتی‌ترین نشقال زورگویی کاری زرگویی رئیس به کارکنانشه حالا البته بسته به کاری که انجام میشه رئیس میتونه اوستا باشه دکتر باشه یا مهندس باشه به هر حال فرم زورگویی هم فرق میکنه با توجه به این عناوین مثلا اگه رئیس اوستا باشه زورگوییش میتونه اینجوری باشه که کارگر بیچاره مجبور کنه تنهایی سه تا ماشین ماسه با بیل آرو زمین جمع کنه بذیزه تو بار کامیو. اعتراضم بکنه میگه همین که از راباط جاده دراز کارگرم فراوون اگه رئیس دکتر باشه میتونه به شما پروژه هایی رو موهل کنه که رسما هر کدومشون کار یه شرکت گندن اعتراضم که کنی میگه میخوای کار یاد بگیری باید از این کارا بکنی تا یاد بگیری اگرم نمیخوای راباط جاده دراز اگه رئیس مهندس باشه میتونه از شما یه برنامه کامپیوتری بخواد که الان مثلا تو خود آی بی و, و, و, و همه اینا مهندس اون نتونسه بشن پس نوشتنش جواب چیه راباز جاده چی؟ دراز نتیجه میگیریم توی محیط های کار اصولا زرگوی که کار فرما یکی از بدترین نوع زرگوی تو ایران چون اگه اعتراض کنی چی میگم بهت؟ راباز جاده چی؟ بله دراز زرگو دانشمندان معتقدند که زورگوها در اکوسیستم‌هایی بهتر رشد می‌کنند که بقیه جانداران اکوسیستم به آنها اجازه زورگویی بدهند اما با توجه به اینکه دانشمندان در اکثر مواقع حرف مفت میزنند موارد متعددی گزارش شده که زورگوهای زیادی در اکوسیستم به جان هم افتاده و وضعیت وضیعت زورتوزوری را در محیط زیست خود و باقی جانوران به وجود آوردند در زمانهای قدیم به خصوص در دوران زورزورزوکی زویک برای زورگویی در سطح بیشه ها لازم بود که یک جاندار از اندامی ورزیده و کلی ورزشکاری بهرمند باشد اما از وقتی که برخورد یک شهاب سنگ به نمیدونم دونم کجای سیاره نمی دونم چی دوران؟ زور زویک را پایان بخشید، دیگر حتما برای زورگویی نیازی به ازوله و باشگاه و تیشرت جذب پوشیدن نبود زورگوهای جدید دیگر به جای زور بازو از مغز خود کمک می گرفتند. اما مواردی هم گزارش شده است که تا زورگوی جدید می از مغزش کمک بگیرد زورگوی قدیمی گولاخ چنان زورش را بر مغز وی کوفته که تکه های مغز وی تا چند ایکو سیستمان هم پرتاب شده است و بخت بیچاری بیمغز بعضی دانشمندان معتقدند زورگویی هیچ ربطی به این چیزهایی که ما در این برنامه گفتیم ندارد و منشع و مبدع زورگویی جای دیگری است برخی دیگر از دانشمندان معتقدند که زورگویی یک امر موروسی است و ژن آن از جانداران والد به طول منتقل می شود. ما چون اینجا زورمان خیلی زیاد است نظرات هر دوی این دانشمندان را رد کرده و چون خودمان هم نظر خاصی نداریم تا برنامه بعدی شما را به ایزد منان می سپاریم خدایا نگیرین قدرت زورگوی را از ما مرسی آه. از اونجا که قدیما امکانات کم بود و از طرف همه چیز ارزون و فراوون بود پدر مادرها تفریحی جز تولید مثل نداشتن خب هر خانواده 6-7 تا گایی تا 9 تا 10 تا 12 تا 15 تا بچه داشت تو هر خانه میرفتی همچه مثل نقل و نبات بچه سی دست باریخته بود دیگه برای همین کلن کسی بچه رو زیده جدی نمیگره فصلا آدم حسابش نمیکرد و برای کنترل این حجم از بچه خونه وادا همیشه به روش های زوری و پادگانی و کتکی و اینا رو می آوردن. الان تو دوران مدرن وضعیت زندگی ها دیگه تغییر کرده وادا دیگه یه بچه که به دنیا میارن کل زندگی خودشون و اطرافیان و همسایه ها و اینا همه وقت بزرگ کردن این بچه میشه و برای همین این بچه ها که خب این حجم از محبت و توجه رو می‌بینن. فکر میکنن خب چه خبره دیگه مثلا توفهی هستن و برای تو خونه به تدریج حکومت ولایت مطلقه بچه شکل میگیره جوری که در این خانواده ها همه چیز باید مطابق با اراده و سلیقه بچه باشه و خب طبیعیه که ولایت مطلقه هر جا که باشه با خودش گلدوری و زورگویی و توقعات عجیب و غریب میاره که دیگه هممون در میون دوست آشنا و, و فک و فامیل و اینا با این نسل کامیجون ها و سولیجونها ها و اینا مواجه بودیم و دیدیم که چقدر مخند, خیلی مخند. مدیر کل آموزش پرورش تهران تهیه یک مصاحبه ای اعلام کردن که به زودی یک درس جدید قراره به دروس دوران دبیرستان اضافه بشه اگه گفتین چه درسی؟ اگه گفتین؟ وسایه یا امام؟ نبا با اون که ما دانشگاه جان؟ دُرایجون وصایای امام خامنه‌ای نه نه اینم نیست نه اصلاً نمی‌خواد آقا اذیت من خودم میگم قرار به زودی کلاس‌های برجام در مدارس تشکیل بشه و در حال حاضر کتاب برجام هم تدوین شده به جان خودم اگه دروغ بگم به خدا اگه شوخی کنم اینا گوش کنین ببینین در قالب یک مجموعه بعنوان کلاس برجام به مناطقمون ابلاغ خواهیم کرد نامه حکیمانه‌ای مقام معظم رهبری هست به ریاست محترم جمهوری دوم متوسطه و توصیه ما پایه دوم از دوره دوم است که در حقیقت میشه کلاس 11 همه مدارس مجاز هستند که به عنوان فوق برنامه در صورت تصویب شورای مدرسه استفاده بکنند. بله دیگه پس اگه بچه دبیریستانی تو خونه دارین چشمتون روشن که قراره توی مدرسه براشون دکنار ریاضی و فیزیک و شیمی و این چیزا مبانی مذاکرات هستی و اصول نرمش قهرمانانه و چه میدونم سانتی ریفیو شناسی و این چیزا هم تدریس بشه دیگه این چه میکنه این برجام حالا اینکه این چیزا حالا به چه درده مثلا بچه مدرسه یا میخوره و اینا حالا بعد زمان بگذره تو متوجه بشیم دیگه ما که نفهمیدیم <تصفيق> کی من دوست نداره یه این چه من این همه برای اینو تلاش کردم این همه درس رو دردم با سردار باقیر زاده باقیر زاده باقیر بله <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> یعنی چه بابا حسله بابا چه زنده ای یعنی چه کسی ازجاد کرده تو دادی دادی بگو بریم شمشیر من را در نقطه مناسبش فروه کنی محمد. برو بابا کس... دادی تو هم فقط حرف بیزنی توی بملکت حق من رو دارم میخورن توی هیچ کاری از دستت برنه میاد برای جیگر پارت انجام آه. بدی اصلا ما... بگو ببینم چرا منو به دنیا آوردی یا الب ما, بگو... ما که خب مستقیما شما رو به دنیا نیاوردیم مربای بابا ولی خب نقشه سزایی در مرحله قبلی داشتیم که حالا بگذاریم بگو ببینیم چی شده این اسرائیلی اذیتت کرده ن بابا تو هم چپ می‌دیرس میای به بفشید میرسه ها این آه. آه. که جدید آمدن به تو بی احترامی کردن بریم آه. از دم تیغ کار کارموزا میگی نه بابا این بدبختا که اینجا همش دارن خودشون گیج میخورن اینجا نمی‌دونن چی شده پنال دیگه همینجوری کلا علم جهاد کنیم به خاطرشون نه خیر ندی اتفاقا از دست همین مقام معظم رهبریتون شاکی هم حسابی الله همه سلق از دست مقام معظم رهبری هم, <الله> م... هم مگه آدم شاکی میشه اصله بابا این چه حرفیه زبانت رو گاز بگیر بله مگه چیه واقعا بله. دل منو شکسته ایشون دادی من دیگه نمیتونم مگه شما روبته خاصی با معظم لح داشتی عزیز من که حالا دلت شکسته به بله پای بچه نا... چیزی وسطه نه دادی بابا تو میه من یه نشنیدیشون دیروز از کیا تقدیر کرد تقدیر کرد آه. چرا پس کسی به ما خبر نداد نم. بگو دیگه بعدی کشتی ما بله. نه نخیر ایشون بفردنده نیروی دریایی سپاه و اینایی که خوب. ملوانای آمریکایی رو بازداشت کرده بودن نشون دادن دیگه نشون دادن بله به چی رو نشون دادن بابا نشونه فتح دادن دادی نشان نشونه فتح میدونی بله. یعنی دقیقاً. چی دقیقاً من نمیدونم یعنی چی خب چون ولی ایشون نشون دادن حتما کاره خوبی بوده دیگه اصلا من این همه بله. سال تو این مملکت جون کندم ددی این همه رفتم بله بله. از گامبولا و سوازیلند و جزایره مکارونی جنسا بردم توی این مملکت آخو با کار خوبی اه. کرده دیگه پسرم مکارونی با... خیلی لازمه برای برای بابا چرا هیچگی به رو... من نشون نداد آخه پسر عزیزم مربای گلابی بابا بیا ما خودمان شما نشان میده این کاری نداره که بابا من نشان و رو میخوام بیا. نشان شما رو بیا تو من ببینم پسر عزیزم بیا نکن بابا بیا, بیا مقاومت نکن بیا ببینم بیا, بیا. بیا نده بابا اینقدر ددی نازم کن که دامان ما آغاز همه آه. خوبی هایه ددی نگفتی چرا منو بدون دنیا آوردی آیفشان فشار پسر عزیزم شما با این حیکلت ما شما را به دنیا نیواردیم یعنی من سر رایی بودم ددی نه خیلی خیل. پناه خدا من نظور ما اینه آه. که شما را مادرت به دنیا آورده دیگه اون اما... که میدونم بابا بله. بگم چرا یعنی منو چرا به وجود آوردی دیگه آن از اون لها دیگه آه. پسرم آدم مؤمنات رو بدون کنترل و پیشگیری قدایت بکنه دیگه همین جوری میشه دیگه آه. نکنی تو یه وقت این کارها واقعا نکنی... که یعنی من بخلم... نخواسته بودم دادی آه. نه شما برخواسته بودی پسرم این فشل نده بگه اینقدر نوست کن اطلاعیه توجه به اتصال شبکه بانکی کشور به یارو سویفت چیه همون و همچنین برداشته شدن تحریم ها و احتمال ورود <تصال> شرکت های جاسوسی خارجی از همه اعضای دیوار نبرد پایگاه دعوت به اول میآید تو در اسرع وقت در جلسه اضطراری هیئت مدیره پایگاه دیوارنوردان متعهد دل پس شرکت نماید. دستور جلسه انتخاب بهترین سفارت یا سازمان برای حمله و اشغال انتخاب بهترین شعارها علیه مقامات دولتی داخلی و خارجی و توضیح غنیمت ها و کمک های باقی مانده عملات قبلی به سفارت انگلیس و عربستان لطفاً در هنگام مراجعه کفش دیوارنوردی و باقی لوازم حمله یادتون نره هیئت مدیره پایگاه دیوارنوردان متعهد دل و کل کشور. دوستان عزیزان هاجاغا پناهیان رو که میشناسید حال یکی از دلواپس های همیشه در صحنه هستن خیلی هم به بیت مقام معظم رهبریشون نزدیکن یه سخنرانی داشتن توش از خاطرات سفرشون به کانادا برامون حرف میزنن ایشون اول برای جمع حاضر که به گفته خودشون دانشجویان ایرانی کانادا هستن تعریف میکنن که اگه میخوان دلیل اصلی افسردگی این غربی ها رو بدونن باید برن کجا؟ باید برن الان خودشون میگن باید برن دم یه جایی یه جای خاصی برید دم در این دانسینگ ها و مویت های کینه ها برای تفریح میرن وقتی دارن میان بیرون نگاهشون کنید جوان‌های مثل خودتون رو ببینید چقدر افسردن این آخرش از این بالاتر دیگه هیچ لذتی در دنیای غرب وجود نداره آخرش هم ببینید چقدر افسردن آخه یعنی جوانان غربی که میرن دانسینگ همه با گریه و زاری و اخمای در هم میان بیرون یه جوری که اصلا آدم با دیدن اینا ناامید میشه از همه چی البته من نمیدونم دقیقا این دانسینگ یا دیسکوی که آقا رفته بودن دم درش وایساده بودن کدوم دیسکو بوده ولی خب یه به حال یه دلیل ناراحت بودن اونها شاید این بوده که یهو یه از دیسکو اومدن بیرون چشیشون افتاده و خب به جمال آجاقا پناهیان و اصلا, اصلاً گیرپاچ کردن رسماً یا شاید مثلا یه وقت چون داشتن میرفتن بعد اون داشتن به حال اون شب به حال دیسکو بازیشون تموم شده بود آخر شب بوده از این ناراحت بودن که دیگه تموم شده آخر شبه اینا رو از این نظر میگم خیلی بعیده کسی بره دیسکو افسورده بیاد بیرون. اصلا من نمیدونم چیزی امکان نداره. اینه که ما توصیهمون به اینه که دفعه بعد که رفتن خارج دیسکوها رو دید بزنن. اولا سر راوان هستن، مردم میخوان راحتشن خب. بعدم اینکه دیسکوشون رو عوض کنن. شاید مثلا اون دیسکویی که رفته بودن فازش کلاً تیریپ افسوردهگی بوده. یه مدل های هست مثلا یه ممکنه باشه دیگه والا. در آج آقا پنایان در ادامه سخنانشون به بحث شیرین حرام بودن گوشت خوک پرداختن و دلیل این ماجرا رو خیلی رک و پوسکنده برامون گفتن که ما تا الان نمیدونستیم این، اینه واقعا گوشت خوک صفت غیرتی رو به انسان منتقل میکنه بله الان توجه کنید من براتون باز میکنم این ماجره رو ببینید مثلا الان شما برید یه گاوداری. به به خانم گاوه بودن خیلی دلبری کردن خیلی شدید خب چند قدم به سمت خانم گاوه بردارید هنوز مثلا به سه قدمی ایشون نرسیده احساس میکنید یک جسم سیاه ای داره از دور به سمتتون میاد صداشم اینجوریه آره یا خی... خدا خیلی خوب صدای این غیرت گاوه نر بوده دیدین چه میکنه غیرتش حالا خدا رو شد که شرایط حال آزمایشگاهی بود و اینا و نه الان همه آقا گاوه آقا... آقا... زرفرمندانه سن بشه کشه رو پیکر چاکچاکی شما داشت اکس یادگاری میگیره اما همین آزمایشو شما برید تو خوکدونی بکنید این خانم خوک هست داره دلبری میکنه حالا برید به سمت ایشون یه دستی هم به سر روش بکشید نمیدید که آقا خوکه یا رفته استبغلی حواسش نیست اصلا تو باغ نیست یا هم که هست داره باز خودش نشخار میکنه آره این صداش هم, هم این صدای خانم خوکه هست همین جوری برای چیز دیگه برای بی غیرت و اینا اصلا وضعیت از نظر غیرتی غیر قابل تحمله واقعا خیلی اح... اح... واقعا حق وااجقا پناام بود ما خوشحالیم که با دو تا آزمایش تونستیم سحت فرمایششون رو به شما ثابت کنیم در حال بگیم بگییم همچی اهل آزمایشی هستیم به دیگم تموم شد و یه پسفردوی دیگه کاش من و تو یادمون باشه که گاهی میش امیدها رو تو یه کل پشتی گذاشت و را افتاد که گاهی رسیدن اونقدرها مهم نیست که خود رفتن شاعر میگه بیا و در خیل همه آنها که مندند تو پا به راه بگذار بیا خستگی هامان را جا بگذاریم لبخند لبخندهات را بردار و من دل تو را بیا تا برگردیم کولیوار به آن معصومیت گم شده شبتون خوش کول بارتون پر از امید رفتان سوار کولی با خود تو را نبارده شب من دست تو باشه تاریکی فشرده کلی کنار آتش رقص شبان کو شادی چرا رمیده آتش چرا فشرده رفتان که پیش پایش دریا ستاره کردی رفتان که پیش پای دریا ستاره کردی چشمان مهربان یک قطره نازت رد رفت و گرد راش از دوده آتیره نیل و فرانه دربا